که مشکل تو روزی که سه ما یاد کند ببرد از عجر دو بنده که آزاد کند باسد حضرت سلما که سلامت بادش چه شقد گر به سلامی دل ما شاخت امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گر خرابی چون مرا لطف تو آباد کند یاربن در دل آن خسرو به شیرین انداز، که به رحمت گذری بر سر فرهاب کند حال یا عشقه توز بنیادم بر تا دگربار حکیمانه چه بنیاد کند گوهر پاک تو از مدهت ما مستقنی است تکر مشاته چه با حسن خدا کند ره نبردیم به مخصود در شیراز کررم روز که حافظ راه برده آف حال خب از اینکه که بخوایم به معنی کردن بیت به بیت قضیه بفرزیم یه نگاه به خود که بکنیم مثل که نشون میده که این جواب یه نام است که مشکین تو روزی که یاد کند به عبارت اجل 200 بنده که آزاد. یعنی تو نامه بن نوشتی خیلی هم کار خوبی کردی مثل اینکه 200 بنده رو آزاد کردی. جواب نامه. حالا بعد باگشن. خوی نامه به کیه؟ میشه میشه پرسید که این نامه رو در جواب نامه کی نوشتی؟ یه قرینه کوچولوها. ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز قررم آن روز که حافظ ره بغداد کنه بر میکنه بره بغداد بنابراین کسی که نامه رو نوشته و حافظ این قضل رو در جواب حسوده باید در بغداد بوشه در بغداد کی بوده که حافظ میتونست باید چیز داشته باشه یکی از پادشاهان آل جلایر جلایریان به نام سلطان اویس، سلطان اویس جلایری در اون روزگار در برداد فرمون روا بودیم ارز کنم که برای اینکه براتون چیزم نباشه آشنا باشه کاملا عرض کنم که میارم چیزشو یه قزل دیگه داره خود خاجه عرض کنم که در معت سلطان اویس او رد شدیم ازش غزل 158 خوش آمد گل و خوشتر نباشد که در دستت بجوج ساغر نباشد زمان خوشدلی در یاو و دوریاب که دائم در صدف گوهر نباشد میگه من از جان بنده سلطان اویسم او اگر چه یادش از چاکر نباشد به تاج آلمارا گشت که خورشید چنین زیبنده افسر نباشد بنابراین سلطان اوویز جز ممدوحان حافظ بوده حافظ باش دوستی داشته و اون چه بنده میتونم اضافه بکنم این از که این شاهی بوده بسیار بسیار با استعداد بسیار بسیار هنرمند اهل خط اهل شعر اهل موسیقی اهل زوق و اون روزگار که دود دم نبوده اما ایشون با افیونم آشنایی داشته یه میل میفرمودن ظاهرم به هر حال آدمی خیلی خیلی برجسته است و خیلی خیلی با استعداد و ظاهرا این مکاتبه بین حافظ سلطان اوویسه که این قزل رو موجب شده و دنبالش حالا دنبالش باید می‌رسیم. میگه کلک مشکین تو مشکین برای اینکه مشک سیاهه و قلم با مراکب سیاه اما خوشبو هم هست دیگه مراکب خوشبو نیست خوشبویش مال عطر معنبیه قلم شاهه کلک مشکین یعنی باعث خوشحالی میشه کلک مشکین تو روزی که زمای یاد کند به عجر اجر 200 بنده که میگه میگه یاد کردن تو از ما معادله اینه که 200 تا بنده آزاد کنیم و توجه بفرمایید که یکی از مسائلی که خیلی چیز بوده خیلی به اصطلاح مطرح شده اون روزگاری که ما جوون بودیم و تو این پای علمای این کمونیست‌ها و بازیاست نمیچتی ما از کارم کردیم اینا بعد یه قالبایی هم داشتن که روزگار بردگی بوده و روزگار فیودالیسم بوده و اون هم سیرواش بوده و یه قالبایی داشتن ترتیباتی و تصوری که از بردگی داشتن درست بردگی یونان قدیم و قاره اروپا و این حرفا بوده که بعدش هم دنبالهش در امریکا و اینا کشیده میشه و اون جزء چیزای کاملا مشروع بوده یعنی عرستو میگه اگه برده ها نباشن که بیان زمین رو شق بزنن و عملیگی کنن چیز کنن هم نمیتونن کارشون برسن اونا باید درست پنهسی بدن اینا بخوره کار و بعد این آدم رو میگرفتن میوردن بعد وقتو میبستنش به گاواهن به جای اصل هر چی میگفت آها من خاتم سازی بلدم من مثلا ابریشم دوزی بلدم من صنعت صنعتی بلدم که ساعت برابرا این پول در میاره بیرری من اون کار گوش نمیکرد که زیر شلله بتن به ا به. گاوان. این روزگار بردگی یونان باستان به این صورت بوده متاسفانه بردگی در اسلام رو هم هیچ وقت تحقیق نکرده. دلیلش این است که الان آخوندا میگن که، چون برده وجود نداره مطالعه کردن شرایط بردگی و اوضاع احوال خرید و فروش اونم درم احکام ورده کار لغوی است موضوع نداره موضوعش منقضی است بنابراین نمیخونن اهل تحقیق و افرادی که جامعه شناس و اینا مثلا اونا که بلد نیستن در حالی که مطالعه این فتوکتابای تمام کتاب فقه هست ولی اخوندا نمیخوننش، فکولی هم که بلد هستن بخونن. اینم مونده. و مطلب این است که وضع بردگی در جامعه اسلامی به کلی یعنی از سر تاپ تا پا فرق درست هم هایی بودن که خودشون به پادشاهی رسیدن. سبوکتکین پدر سلطان محمود به غلامی در بازار فروخته شد. خریدارش هم خودش قبلا غلام بابایی بود به نام التکین التکین غلام پاچان سامانی بود کدشته بود من در سپاهسالار خراسان بچه نداشت یه غلامی خریده بود به نام که قدش هم بلند بود معروف بود به سبوکتکین دراز و اون فروشنداش هر روز سرکوپ بهش میزده به این که غلامکنیزی اشکال داره کارشون هر روز باید بخورن اگه فروش نره هر روز قیمتش زیاد میشه دیگه یعنی باید بابا عجیبش نهار شام بده این بخوره هیچ کارم نکن وایسی تا بفروشنش برنامه‌ریزی هر ای قیمت این رو بله هی سرکوب به این میزده که مرد که بی مصرف دراز تو همش میخوری رو دست منم موندی تا بالاخره التاکین میخرش و این مرد خیلی قابل کارآمد حسابی بوده به نحوی که تمام کارهای التاکین رو به سرعت قبضه میکنه و التاکین دخترش میده به بعدم چون بچه ببخشید بخش، دخترش نه نظرم چون بچه نداشته بسیعت میکنه که بعد از او این به جاش بنشینه مثل پسرش مینشینه و از پسالار خراسان میشه و پسرش محمود اولین کسیست که در اسلام اسم سلطان میذاره رو خودش این کماله این. اما زنا انا بسیارشون مادر خلفای عباسی کنیست مادری بسیاری از پادشاهان ایران کنیز بود و بسیاری آدم های فوق العاده برای اینکه غلامو کنیزو به اون صورت نمی کردن در اسلام وقتی برده می آوردن یه مقداری از ترکستان به قول خودشون یعنی اون جایی که چشمای بادومی دارن از اونجاها می آوردن اینا پسراشون برای سوارکاری و تیراندازی و سپاهیگری بسیار خوب بودن که میگه معتصم خلیفه عباسی گفت که خلافارا هیچ بندهی چون ترک نباشد از جنگ و تین اندازی خیلی خیلی خوب بودن حافظم میگه به تنگ چشمی به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم که حمله بر من مسکین یک خبا آورد معمولاً علامانشون میرخن در سپاهیگری کنیزاشون هم ظریف مریف و نازک مازک و نمونهش اینجا میبینید که اینا هم درسشون میدادن یادشون میدادن انواع هنرها نرد باختن شطرنج باختن رقصیدن موسیقی آواز خوندن مقدمات علوم مختلف همش وسایل سرگرم کردن و پذیرایی کردن ساغیگری و هر چقدر اینا علمشون زیادتر می قیمتش قیمتشون هم می خورد. اگر یه وقت اطلاعاتی راجبی میخواد، در هزار و هست اونجا داستان یک کنیزی هست که میگه گوه من ببر بازار بفروش و با بگو ده هزار دینار یعنی پنجاه کیلو تلا قیمت چی ای کنم گفتن چرا بگو که این کنیز من حاضره در باره تمام علوم تمام دانش ها با علمای درجه اول مباعثه کنید اگر اونا رو مغلوب کرد این در ازاره نور اگر ازشون شکست خورد من مفتکی میده و میگه سحنه درست کردن و آمدن و نشستن و حرف زدن این اونا رو مغلوب کرد قسط در ازاره جب هست حالان میتونید بخوند این یکی حالا اینو کار ندارم اینا رو ای اگه دلتون بخواد یه وقت یه کار خیلی خیلی مهمی که اهل تحقیقی که جربار جوامیش نشناسی نا میتونه بکنه همین است که از برده داری رو در اسلام و در تاریخ اسلام مطالعه کنه احکامش رو بساطش رو رو و کارهایی که می اما یک مسئله مهمتر اینه که اینا این برده ها رو جزء خانواده خودشون میدونسن اصلا سلمان فارسی زاخری بلاله از اونگوی پیغمبر ذر خرید بود بسیاری از مسلمانان های صدر اول همشون قلام ذر خرید بودن همه آزاد شده بودن و دنبال کار و دخترشون میردن به ایناینا اینا رو بارد خانواده میکردن و به تناسب حیثیتی که داشتن و به تناسب استعدادی که داشتن و قابلیت که داشتن میرفتن جلو و اون وقت مسلمونی آمده بوده برای جریمه بسیاری از گناهان کپارش بارش و آزاد کردن بنده قرار بود مثلا جرم خیلی ساده ی مثل روز خوردن اگه کسی یه روز یه روز ما رو میتونه عمدن رو بخوره یکی از کار باده یا یک برده آزاد کنه اگه بتونه اگر نه یک ماه و یا روزه بگیره اگر نه مثلا سی بعده مردم رو تا بده چون مثلا گوش نبود برحال انواع و احسام وسائل وجود داشته و تشویق های مکرر در مکرر شده و ثواب های زیاد نوشته شده برای آزاد کردن بنده اینجا هم که حافظ میگه که ببرد اجد دو بنده که آزاد کند یعنی خیلی ثباب بزرگی کرد به اندازه ثباب آزاد کردن دیویست بندی بندید قاصد حضرت سلما که سلامت بادشت اولا تو این بیت نگاه کنید که سه تا سلام و سلامت اینا این هم دیگه هست و این به هماهنگی و زیبایی شیر چقدر کمک می قاصد حضرت سلما که سلامت قادش چه شودگر به سلامی دل ما شاد سلما به قول عربا اسم عروس شعره عروس شعر یعنی اسم زند و محشوقهی که معمولاً شعرهای عرب به عنوان محشوق خودشون اسم می بردن. یکی از اینا سلماست یکیش سعدا مثل سعدی می نمیسن سعدا و دو دیگری ام اوفا اسم عروس, عروس شد سلمان یکی از اسمهای اسم معشوفه مثل لیلی مثل ازرا مثل شیرین و امثال اینا در عربی هم در عدب عرب سلمان این طوره قاصد حضرتم به معنی مجلسی اینو گفتم قبلن وقتی میگن حضرت امام حسین معنیش اینه که ما که خودمون قابل نیستیم با امام حسین حرف بزنیم که ما در مجلس ایشون عرضمون میکنیم که حضرت وعنی مجلسه همچنین که جناب به عنی آستانه دره وقتی میگه به جناب فلان عرض کردم یعنی به خودشون که نمیتونم بگم عرای به آستانه درشون کردم که قاصد از مجلس سلمه اومده خودش که بالاتر از اینه که قاصد برسه قاصد حضرت سلما اون که سلامت باشه هم جمله دعایی است که انشالله سلامت باشه چه شود گرب سلامی دل ما شاد کند ای کاش البته باز اشارش به پیک پادشاهی که از اونجا آمده میگه چه میشه کیادی از موقع و دنبالش هم باز همین همش تغاظای محبت و اظهار لطف و انایت فادشاهه باز دنبالش امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گر خرابی چون مرا لطف تو آباد کنند میدونید که معروف میگن گنج در بیران است اینو که بسیار شد ولی قصه گنج در بیرانه این نیست که مردم گنج رو در خراب چار کنند خیر ارز کنم که مردم تو خونه هاشون اون وقتهایی که بانک و حساب و کتاب نفت بانک سوئیس که نبوده حالا که هست هزار رو آفت داره رو گرفتاری داره ولی چیزی میکردن تو کوزه و چوالش میکردن جای مطمئنی تو خونه‌شون. شون قیام میگه که زن پیش که بر سرت شبیخون آرند یعنی مرگ زن پیش که بر سرت شبیخون آرند فرمای کتاب باده گلگون هارند تو زر نهی یه قافله نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرن <تصفح> <تصفح> میگه وقتی گذاشتن تو خاک تموم شد زر منتها نمیپوسه زر هیچ جور خراب نمیشه اینو میذاشتن چال میکردند برای اینکه دز نزنه کسی نبره جای مطمئن نباشه بعد یه دفعه مثلا حمله می‌شد اینو شهر می‌زدن می خراب می داغون می‌شد. همه افراد می‌کشتم قتل عام می‌کردن. این خونه هم ویرانه می‌شد تمامش می‌رفت. می اصلا یه تل خاک می‌شد. الان در کرموشا و اینا اطراف کرموشا که می‌رید از راه کرموشا تا قصر شیرین که برید یه مداری تپه هست اونجا که پیداست که این تپه ها تپه طبیعی نیست. کسی هم که خاک دستی نمیره بیزه. این ساختمون روز خورخود اینقدر بارون و باد و اینا باریده شده یه تعلیل این بعد حفاری بشه یعنی به قاعده قواعد باستان شناسی رو پیدا کنن که این چی بود چه بوده هم که میکنن که گاهی آثارش دیدین عکساشو دیدین گزارش باستان شناسی نمیبینید یه چیزایی هم اونجا پیدا میشده از جمله کوزه ای که توش گذاشته بودن و گذشته بودن هم که مشهور حفاری بودن پیدا میشد بنابراین این که میگن گنج در بیرانه است گنج تو خونه بوده بعد خونه تبدیل شده و این گنج اونجا مونده و به هر حال تصور گنج معمولاً در زبن فارسی با تصور بیرانه و با تصور خرابه توانه امتحان کلمه امتحان از مهنت دیگه منی آزمایش یعنی به زحمت انداختن یه کسی رو در برابر یک کار سختی قرار بدن ببینن که میتونه انجام بده یا نه این امتحان دیگه یه امتحان کن که بسی بسی غیر کثرت یعنی بسیار امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گنج زر اینجا نیست گنج مراد میگه اگر اگر لطف تو آدمی، آدم خرابی من آباد بکنه خداوند به مرادش میرسونه امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گر خرابی چون مرا لطف تو آباد کنه آرب اندر دل آن خسرو شیرین انداز که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند اولا خسرو و شیرین رو فرهاد رو آورده دوم این که خسرو به شیرین گفته خسرو به شیرین دومنی داری یکیش یعنی خسرو شوهر شیرین یکی هم یعنی خسرو شیرین صفت و شیرین گفتار و شیرین روش در هر حال اسم خسرو با اسم شیرین قرینه است و همانند و نزدیکه تناسب معنوی داره بنابراین احساس زیبایی که زیبایی مقدارش مربوط تناسب به تناسب و هماهنگی است از آمدن الفاظ متناسب با هم آدم احساس زیبایی میکنه این است که آمدن خسرو و شیرین و فرهاد با هم به این ترتیب بدون اینکه هیچ ربطی به خسرو پرویز داشته باشه و به شیرین داشته باشه و به فرهاد داشته باشه موجب این میشه که آدم فکر کنه که این زیباتره و این صنعت رو در ادب فارسی بهش میگن مراعات نظیر مراعات نظیر یعنی وقتی که یه چیزی رو یه کلامی رو یه کلمه ای رو میارن نظیرش رو چیزی که قرینشی بیارن گنج و خرابه هم همینطوره گنج و خرابه و آباد و نو همه با هم متناسه صنعت دیگه هست نظیر اینه این که درست اکسه اینه چون آدم درسته که وقتی یه چیزی به ذهنش میاد نظایر او هم به ذهنش میاد پر این حال وقتی یه چیزی به ذهنش میاد عکسش هم پاره میشه. از تاریکی به روشنایی منتقل میشه از روشنایی به از زشتی به زیبایی از زیبایی به زشتی بنابراین اگه دو تا مفهوم متضاد رو هم با هم بیارن همین احساس زیبایی هم به آدم دست میده ولی در مورد دوم اسم این صنعت میشه تضاد مراعت نظیر و تضاد خراب و آباد اگر خرابی چون مرا لطه تو آباد کند خراب و آباد تضاد دید آلیا عشوه ی عشق تو دنیا برد عشوه به معنی فریبه فقط پور زدن لوندی و دلبری که محسوسه بانوان و زیباست اون کرشمست اشوه بحنی فریبه به همین دلیل برای غیر لوندی زنان هم به کار میره حافظ داره بانگ گاویی چه صدا بازدهد اشوه مخر سامری کیست که دست از ید وریزا رو دارد اشوه مخر یعنی گول نخور میخواد گولت بزنه قبول بول نکن عشقه عشق تو یعنی فری به عشق اول دوم این که این کلمه حالا که به معنی اکنون داریم به کار میبریم میش توجه کردیم که توی چهر سعدی یا حافظ یا اینا هیچ وقت حالا نیست نیدیم خیلی شده که نیست ما توجه نمیکنیم. کنیم و رضایت نیست قضاست و رضا برای اینکه قضاوت و رضایت هم وجود نداشت نموان ایرونی ها باید این مسئله رو جل کردن پرشون زمدن. اصل عربی کلمه هم قضاست و رضا بنابراین نارضایتی، غلط نارضاییه مسند قضاوت، حتی مسند قضاوت حالا نداریم تو دو سعدی آفز حالا نداریم حالیا داریم یکی هم نیست که خیال کنیم که حالا این تصادفیه حالیا مسئلت وقت در آن بینم که کشم رقب میخانه و خوش بنشین حالیا یعنی اکنون کم کم مخفف شده شده حالا از حالا صورت مخفف شده حالیاست یعنی فعلا یعنی اکنی حال یا به اشق تو زب بنیادم تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کنم؟ میگه فعلا که گول بری به عشق تو بنیاد مره کند تا ببینیم بعد از سر عقل و حکمت چه پایهی بذاری تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کنم؟ ادم میگه تو به ستایش من احتیاج نداری گوهر پاک تو از متحت ما مستقنی است گوهر استلاح فلسفی است اینجا به معنی ذاته در فلسفه گوهر یا جوهر عوارت است از چیزی که قائم به ذات خودش باشه گوهره برای که خودش هست اما سفیدی گوهر نیست که شما هیچ چیز رو تو دنیا نمیتونین بگین، بگین این سفید سفید ندارین یه چیزی باید باشه برف باشه گچ باشه شیر باشه ماست باشه سفیدی رویه اینه که عرز پس جوهر گوهر روپای خوش وایساده عرز وجودش قائم وجود جوهره مثل صفات انسان هوش هوش که نداریم که هوش وجود داره میدونیم یه عده‌ای هوش دارن ولی کو این هوش نمیتونی که در بی این هوش قائمه به وجود، قائمه فعالیت مغز آدم این رو بشه بکنن عرض بس این ذات مثل از نظر دستور در دستور و احکام دستوری میشه اسم ذات و اسمن در اونجا به احکام به احکام گرامریش توجه دارن اینجا به احکام استدلالی و عقلانیش توجه دارن بله یکی، بله گوهر پاکتو یعنی ذات ذات پاکتو مستقنی هم یعنی بینیاز گوهر پاکتو از متحت ما مستقنی مستغنی مستقنی اسم فائل از مستر استقنا به معنی بینیازی از همون غنا غنا غنی یعنی بینیاز فکر مشاته چه با حسن خدا داد کند ماشاته در عربی شونه رو شونه‌ای که سر شونه میگن بهش میگن مشت به همین ترتیب با شین و تا مشت یعنی شونه ثانوین ماشاته یعنی شونه کش. کسی که ابزار کارش شونه است با شونه کار می‌کنه این آرایشگر یه وقتی کسی هست خدا داده داره که آرائشگر احتیاج به آرائشگر نداره و فکر آراشگر کمکی رو اون کنید برای اینکه خودش زیبا هست این چه با حسن خداداد داد کند استفام است. یعنی کاری نمی کنید گوهر پاکتو از متحت ما مستقنیست فکر مشراته چه با حسن خداداد داد کند یعنی هیچی با حسن خداداد داد نمی کند که حسن خداداد داد نداره در ضمن حسن خداداد خداداد صفت مفهولی مرخمه اصلش بوده خداداده خداداده دا صفت مفهولی است با خدا ترکیب میشه میشه صفت مفهولی مرکب دومشو که میبوریم میشه صفت مفهولی مرکب مرخم فکر مشاته چه با حسن خداداد کنند راه نبردیم به مقصود خودم در شیراز راه بردن به معنی رسیدن و فهمیدن و درک کردنه هنوز الان اسپانیا وقتی میخوان بگن پلان چیزی من نمیفهم میگه رانیم برم <تصفيق> <مید> رانیم برم یا نمیفهم بگی مثلا این کار اینجور بکن من رانیم برم راه نبردیم به مقصود خودم در شیراز میگه در شیراز به مقصودمون نرسید مقصود خودمونو ادراک نکرد درک نرسید گاهی حافظ از همشهریاش دلتنگ میشه و شکایت میکنه ولی بعدم که میره بلا داشت تنگ میشه میگه آب و هوای فارس عجب سفله پر برم. کوب نمیدونم فرصتی دولتی که خیمه از این خاک بر یا راه نبردیم به مقصود خودم در ولی میره چیز؟ میره یزد یزد رو میگن زندان سکندر برای اینکه معروف بوده که اسکندر وقتی آمده بود در اونجا زندانی ساخته بود و شیراز رو بهش میگن ملک سلیمان به دلیل اینکه قصه های جمچید و سلیمان با هم آمیخته شده از قدیم الایام و تخت جمشید رو همون بارگاه سلیمان هم میدونستن بنابراین به دلیل وجود تخت جمشید شیراز رو میگفتن ملک سلیمان حافظ میگید یه مدت یک کمی رفتی مدتی یزد خیلی کم سفر کردی یه دفعه رفتی تا یزد نسی که بغداد هم هیچوقت نرفته یه سفرم رفت در لب دریا ازی که جزیره کیشو تنگیه هرمز و اونجاها برگشت میخواست سواش بره هند از طوفان و هیجان دریا اونها ترسیده و برگشت <تصفيق> <تصفيق> اون چیزه دمی می باقم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش در قماق از این بهتر نمی ارزد میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است کلاه های دلکش است، اما به ترکیر سر نمیارزید <تصفيق> آرزو کنم که یه بار رفته اونجا و برگشته یه بار رفته یه میگه دلم از وحشت زندان سکندر بگیره <تصفيق> رخت بر بندم و تا ملک سلیمان برمم <تصفيق> بله. ولی اینجا آرزو میکنه دلتنگ بوده از شیراز و شیرازی ها و اینا میگه ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز پرنم اون روز که حافظ رحه برداد کنم در زمین کلمه برداد رو براتون بگم مرکب از دو قسمت یکی بغ و یکی داد باغ هر فارسی باستان به صورت بگه بگه یعنی خدا یه فرمولی هست اول بسیاری از کتیبه های فارسی باستان نیایش خداست میگه بگه و از رکه او رمزده یا ایمان بومیم ادا خدای بزرگ است او دا که این بوم را یعنی این سرزمین را آفرید دنبالیش هم جمله هایی هست که کار ندیجه بگه یعنی خدا این در فارسی به صورت بق و فق به همون معنی اون عنوان پادشهان چین رو بهش میگن فقفور فگفور یعنی بغ یعنی پسر خدا برای اینکه پادشاهان چین رو براشون منشه الهی قائل بودن لقبشون هست فگفور یعنی بغ طول کلی سلطنت تا قبل از مشروطیت همیشه جنبه الهی یعنی معتقد بودن که ودی الهی نظری 5 6 هزار ساله بعد از رنسانس این تفکر عوض شده و که قوانان شاید ملت چیز الهی نداره الانم که حکومت اسلامی بازم که حکومت <تصفيق> یعنی قدرت حکمرانی بر مردم سرچشمه الهی درید. به حال اونا این بغفور، فخفور لقب پاچان چینه و فغفور ما حالا لغت عندنا این یعنی به سر خدا. بغداد برخ یعنی خدا، دادش از ریشه دا. من الان همین فرمول فارسی باستانو که خوندم میگه بگ وزرک اورمزد دا یا ایمان بومیم ادا. خدای بزرگ از اخورا مزدا که این بوم را ادا یعنی آفرید دا میشه دا به معنی آفریدن اگر شاهد خیلی خیلی خیلی دمی دستی بخواد خواهد کلمه خداست خدا بوده خود دا یعنی وجودی که خودش خودش را آفرید بعد در ترجیب وقتی که حرف آخر کلمه اول و حرف اول کلمه دوم با هم یکی باشه یکش میفته. خود دا دوست تر میشه دوست تر حتی دوتا شبیه به هم دوست دار میشه دوست تار فرض کنیم خدا یعنی کسی که خودش خودشو آفریده پس بقداد یعنی خدا آفریده داد از ریشه دا یعنی خدا آفریده و کلمه دادار به معنی پروردگارم همین یعنی آفریده داد هم داد هم به معنی قانونه برای اینکه آفریده ذهن قانون گذاره پس برداد اسم اصلی یعنی معنی اصلیش یعنی آفریده خدا یک کلمه دیگر هم هست که بگم که بعد کمی استراحت کنید کلمه بی ستون بی ستون نه بی داره نه ستون داره اصلش بوده بغستان بغستان استانش پساوند مکانه یعنی جایگاه. باقیم باقیستان یعنی مقدس جایگاه خدا بغستان شده بهستان و بهستون و وبدی به بیستون اصلا نهده بید <تضحن> شاه را بهبود از ساعت سب ساله و زو قدر یک ساعت عمری که در اون داد کند این در نسخه محروم خانداری نیست ولی چون نیست من چیزیش که نمی کنم میگم این ترجمه ی حدیث بر حدیثی است حدیث است که یک ساعت عبد کردن پادشاه از یک عمر نماز خوندن و روز گرفتن و عبادت کردن بالا ساعت خیرون من عبادت سب میسی که جمعه حدیس یعنی داد کردن در یک ساعت بهتر از عبادت هفت ساله اینو حافظ ترجمه کرده مرحوم خانلری بله مرحوم خانلری میگه که فقط نسخه مرحوم خرفالی نسخه غزبینی این به تو داره یعنی این غزل یک و دو و سه چهار و پنج و شیش هفت و نه تا نسخه نه تا نسخه از مداره که مرمون خانلالی این غذر رو داشته ولی این بیت قدر یک ساعتی توی یه نسخه اش کنم نسخه اصلیه مرمون غذبینی یعنی من نسخه خلقه خب باید چاو بهتره بعدم هم هم بعد باید رعبون بکنم اخیش سپند خونه اینک داری؟ بود کرم با من بخاداری کند جای بدخاری که من یکم نفخاری کند بود بانگ نای نیست آرد به دل پیغام بی اون گفت یک پیمانم با من وفاداری کند جان فرسود از او، کار دلم نکشود از نکن بود از باشد که دلداری کند گفتم گره نکشودم زن طره بودم گفتا منش فرمودم تا با تو تراری او از عشق نشنیده است از مستیش رمزی بود تا تر که کند چون من گدای بینشان مشکل بود یاری سلطان کجا عیش نهان رنده باداری کد اون طره پر پیش و خم سهلست اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه هر هرکس که ایاری شد دشگر غم بیعدد از بخت میخواهم مدد تا فخر دین عبد و سمت که غمخاری با چشم پر نیرنگ آفس آفظ مکند آهنگ چشم مست شنگ بسیار مکاری کند کنم که برای جلسه بعد بنده خواهش میکنم یکی از دوستان اون نوار شهرام ناظری رو که مثل اینکه که پشت اون آتش در میرستانشه به نظرم این قزل رو خونده بسیار قشم من اگه در آنجلس بودم که نوارم بود خودم می ولی من ندارم اون نوار چیز رو پیدا کنه یکی از دوستان بیارن اینجا که این قزل رو پخش کنیم با اون آقا دوش کنیم و لذت رو اینه اول دوم این که از اجایب اینه چوندا اومدم نشستم 60 صفحه مقاله رو حافظ و اینو اونو سنجیدم به خیال خودم فکر کردم هم همه اختلافات رو میگیرم و یادداشت کنم و یادداشتام کردم سه چهار ماه فرصت الان که اومدم اینجا نگاه میکنم چون در حافظه داشتم این غزلو هیچ اصلا ندیده بودم توی نسخه های دیگه از دلبرک که جان از او کام دلم کام دلم نکشود ازو نو امید نتابم بود باشد که دل دل تو نوست از کار دلم من،, من اصلا ندیده باز اون چیز دیگرش زان طره پرپیچوخم سهل است اگه با چشم پرنهی رنگ او، حافظ مکن آهنگ تو نوست غزبینی ظاهرا از که هم شبرنگ او بسیار تراری کنند از که چشم مستش رنگ او بسیار مکاری کنند باید هیچین هم ندیدن یعنی از روحافظه همجور رفت شد بعد از این همه دقت حالا ببینین که چقدر کار مشکلی وقتی من نوشته بودم این مقاله رو یکی از دوستان نجف دریابندری نوشت تو که این مطالبو گفت اینا جای حافظی که تو تحقیق کنی با این اثر نظاره‌ای که کردی خالیه گفتم نخیر تو نمیدونم که قضیه از چه قرار برای اینکه این کار به قدری مشکلی که آ پنجاه دفعه مادر این کارو بکنه آخر سر این رو حافظی رو نوشته